افغانستان وطنم وطنی کخشکنم بخی ظلمت برکنم شمش دست در گردنم تا کجانست بردنم افغانستان وطنم وطنی کخشکنم بخی ظلمت برکنم شمش دست به فرمایشی استوره های جهادی و مقامت و سازندگی به همه سازان تاریخ هر یک مولا بي صاحب رحمة الله هجرد ومولا أحمد شايدين دوس ومولا بي صاحب جمهوري راغيب ومولا محمد يوسف كاظم ومولا صاحب الله عزيمي بخاني مشركين مهمان تاكي قزي ومفتي كفران تاكي بخاني مشركين مهمان تاكي قزي ومفتي كفران طقاي أي قامت عاش ناس يا عالم دين خلفي دستري قرآن طقاي اما قامت عاش ناس يا دين خلفي دستري قرآن طقاي الهی کشورم مظلوم تاکی به چند مظلوم تاکی به دست دشمنان سر نمیشتش از از طفلال خور محروم تاکی افغانستان وطنم وطنی کفر شکنم بخی ظلمت برکنم شمش دست در گردنم تا که جانست بر افغانستان و تنم و تنی کف شکنم بخی ظلمت بر کنم شمشی دستر گردنم تا که فساد و کفار تا ریاست کردنی فجار تا افسادو پتنی کو فارتائیں ریاسات کرتے نی خوجر کرتے کہ اخ حرام در در قریبی زنداں بغیر سلطہی اخ ارتا کہ اخ حرام در در قریبی بَزِرِ السُّلْطَةِ أَفِي الله کشواره محروم تا کی به چنگی ملحدین محروم تا کی دشمنان نصر نبیشتی از استقلال خورن محروم تا کی ضایعه افغانستان به تنام به تنی کفش کنم به خیزلمات برکنم شمشیر استر گردنم تاک جان است بر تنم افغانیستان بر تنم بر تنی کف شکنم به کنسل می کردنم شمش جست در جان استرتنم. حرمی این وقتا دنبال تاکای، همه پیروج وار زیارت تاکای، حرمی این وقتا دنبال تاکای، همه پیروج وار زیارت تاکای حرمی این وقتا دنبال بزرگی گون خران غربی، غرب آبین نوار اشکار تکی. گون خران تاری، غرب آبین نوار ایلا هی کشورم مغموم تاکی به چنگی مظلوم دین مزلوم تاکی افغانستان وطنم وطنی کفت شکنم بخی ظلمت برکنم شمشید استر گردنم حتا کجان استر تنم افغانستان وطنم وطنی کفت شکنم بخی ظلمت برکنم شمشه در سر گردنم حتا که جانست کسنم به کفران الفتی بیسیار تا که زمومین شب و روز بیزار تا که به کفران الفتی بیسیار تا که زمومین شب و روز بیزار تا که افراموش کردهی مرگ و قیامت بفکری درهم و دولار تاکی افراموش کردهی مرگ و قیامت بفکری درهم و دولار تاکی الله کشورم مظلوم تاکن به تنگی ملحدی مزدوم تاکن افغانیستان بتنم بتنی کوفش کنم با خیزولماد برکنم شمشید رستار کردنم تا کجا نسبتندم افغانیستان بتنم بتنی کوفش کنم با فیزولماد بر Kanam, the sun and به پیشی چشمی ما کشتار تاکی الهی قلبی ما خونبار تاکی به پیشی چشمی ما کشتار تاکی همه بیچارگانی ملک افغان به ملک دیگران فرار تاکی همه بیچارگانی ملک افغان بے ملکی دیگران پر آرتا کر إلهي كشوارا مضمون تاكاي بچنگي ملحدين مزلوم تاكاي افران سن وطن وطن كوف شكن باخي ظلم دركنا الشمس درستر گردنا تاك جانس تاكنا افران سن وطن وطن كوف شكن شمشه شمشیر سر گردنم تا که جان استر تنم خدایا این و تن بیمیر تا که حکیمی خسته و دلگیر گیر تا که خدایا این و تن بیمیر تاکی، احکمی خسته و دلکیر تاکی، اخزان این آش می است سارق مرا، اتمامی ملتش فقیر تاکی، جن جن افغانیستان و تنام و تنیکو فشکنم، بخیزلمات برکنم، شمشیر سرگردنم، تاکجان است برتنم، افغان. لیسان وطن وطن کف شکان باکن ظلم برکن الشمس دست گردنا